الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است متشکرم شما محمد آقا هستید درست است بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست نه الان رامین اینجا نیست فکر میکنم در دانشگاه است میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر میکنم ساعت دو برمیگردد شما پیغام من را به رامین میدهید؟ بله حتما بفرمایید لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ او می داند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله روبروی بیمارستان من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خداحافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ